فصل مرگ پوران خوش ورودم به اسفهان و خانه تیمی جدید با خبری هولناک پایان یافت نیما روزنامه به دست با عجله از در آمد در درگیری مسلحانه خیابان مدائن نارمک چهار خرابکار کشته شدند این خاینین به شاه و ملت زانوهایم هم لرزیدند همانجا در راه رو به دیوار تکیه دادم پریدخت آیتی عباس علی هوشمند به اتفاق دو خواهر نوجوان به نامهای سیمین و نسرین پنج شاهی در درگیری با معموران کشته شدند خبر چون آواری بر سرم خراب شد رفقا پری دخت آیتی پوران یک بار تعریف کرده بود که مادرش او را پری من صدا می کرد یعنی پوران بود که درگیر شده است خبر را چند بار خواندم تا شاید نکته یا نشانه بیابم که تلاع بیشتری از کشته شده ها بدهد پری دختر آیتی دانشجوی رشته حقوق عباس علی هوشمند دانشجوی دانشکده ادبیات کلاف پرسیدم از رفقا چیز بیشتری نشنیدی؟ نیما توضیح داد که گویا رفقا به مکانی مراجعه کرده بودند که تحت نظر پلیس بوده. گوشم چیزی نمی‌شنید. چه اهمیتی داشت که زرباست کجا وارد شده بود. افسوس میخوردم؟ چرا پوران تهران ماند؟ چرا؟ می‌دانستم دیر یا زود این اتفاق می افتادم و اما نمی‌خواستم آن فکر کنم. همان زمان خداحافظی به دلم افتاده بود که این آخرین دیدار ما خواهد بود نیما حالم را که دید پرسید میشناسیشون معیوسانه با خود نجوا کردم هر رفیقی که تا حالا با من بوده کشته شده نیما سرش را کچ کرد و گفت یعنی میگی منم کشته میشم نگاهی تند به او انداختم درباره این چیزا شوخی نمیکنن. منظورم شوخی نبود، فقط اینکه زندگی ما همینه، مگه تو انتظار دیگه ای داری؟ بسواهان که آمدم و تفاوت این شهر آرام را با تهران که در هر گوشش خطر در کمین بود دیدم، آرزو کردم که پوران و بقیه هم آنجا را ترک کنند. در تهران راه رفتن در خیابان هم خطرناک بود، برای اجاره هر خانه ای مدرک میخواستند، شناسنامه، آدرس محل کار و چیزهای دیگر بنگاه های معاملات ملکی موظف بودند تا قرارداد اجاره یا خرید خانه را به کلانتری محل بدهند شاید اگر سازمان مدتی تهران را ترک می کرد و اوضاع کمی آرام تر می شد، می توانست دوباره به تهران بازگردد. با افسوس گفتم انتظار دارم که کشته نشی. انتظار زیادیه نیما دستی به سرش کشید و با آه بلندی گفت رفتن همیشه اصله موندن همیشه استثنا آرزوشو میتونی بکنی اما انتظار نداشته باش. با خود تکرار کردم چرا نمیشه انتظار داشت به اتاق رفتم در گوشهی کس کردم به سال گذشته و روزهای خوبی که با پوران داشتم بازگشتم قبل از پوران با دو دختر دیگر از رفقای سازمان در ارتباط بودم اما با پوران بود که زندگی مخفی را آغاز کردم. خاطرات آن خانه تکی و شب اول مخفی شدن پیش چشمم جان گرفت. چقدر آن شب از دست پوران عصبانی بودم؟ از یکی از رفقایی که به زندان افتاده بود شنیده بودم که می گفت شب اول مخفی شدن درست مثل شب اول زندان شب اول سلول است. اولین صبحی که در اتاق پوران چشم باز کردم چند لحظه وقت لازم داشتم تا بفهمم که کجا هستم و اتفاقات روز قبل را به یاد آورم اتاق کوچکی بود سه در چهار متر در گوشه ای توشک و لحاف چیده شده بودند در طرف دیگر صندوق خانه ای بود با یک چراغ خوراکپزی و چند تکه ظرف به جای آشپزخانه. در بالای اتاق چی بود با شمایل پیامبر، آینه و چراغ نفتی اتاق پنجره بزرگ داشت که به حیات باز میشد. جلوی پنجره حسی آویزان بود که دید بیرون به درون را می بست راه روی کنار اتاق به حیات می رسید و در آن طرف حیات هم صاحب خانه زندگی می کرد برای رفتن به توالتی که به جای در پرده داشت باید چادر سر کرده و به آن سر حیات میرفتم. از شب گذشته دستشویی نرفته بودم و حالا به شدت دل لرد داشتم. صورتم را باید سر حوز می شستم. از مسواک، آب گرم و دوش هم خبری نبود. معلوم بود که خانه در منطقه جنوب شهر است. اما کجا؟ شب پیش در درفکارم غرق بودم که نفهمیدم از چجاهایی رد شده بودیم پوران مرا برای خرید نان، کره و شیر فرستاد. در آخرین لحظه هم گفت: زنبیلو ببر، نفتم بگیر. اولین چیزی که بعد از خروج از خانه متوجه شدم تفاوت چادر سر کردنم با زنهای دیگر بود. آنها چادر خود را جمع کرده زیر بغل زده بودند، در حالی که در شمال شهر چادر تمام بدن زن را میپوشاند. فوری چادر را جمع کرده زیر بغل زده و زنبیل را بیرون آن نگه داشتم. دم دکان نانوایی متوجه شدم که همه به زبان ترکی حرف می زنند. ترکی می فهمیدم اما نمی توانستم به این زبان صحبت کنم. حد زدم که باید اطراف نازیاباد یا حتی پایین تر مثلا یاخچیاباد باشی. صدای سوت بلند قطار که با سرعت رد می شد حدسم را تقویت کرد. نان خریدم. بعد کاسه ای را که همراه آورده بودم به بقال دادم تا از کره و شیر پر کنن. پیت نفت را هم از نفت پر کرده کنار بقیه چیزها در زنبیل گذاشتم و با احساسی خوب از اولین حرکتم در زندگی مخفی به خانه بازگشتم. زنبیل را که جلوی پای پوران زمین گذاشتم تازه متوجه شدم که نفت از لبه پیت لب پر زده و تمام مواد درون سبد را نفتی کرده است سینه پرباد از قرورم یک بار خالی شد چشم پوران برای سرزنشم لازم نبود به اندازه کافی خجالت کشیده بودم پیت را زمین گذاشته زنبیل را پاک کرده برای خرید دوباره نانو کره راهی مغازه شدم بعد از صبحانه پوران گفت میتونی مطالعه کنیم نهار امروزم با تو پوران در فکر ای نشسته و چیزهایی روی کاغذ می نوشت نهار را به ابتکار خود کوکوی بادمجان درست کردم که پس از خوردن آن دل دلدرد گرفتم حوصله مطالعه نداشتم نمی توانستم ذهنم را متمرکز کنم پوران تمام روز کلمه حرف نزد نهار هم نخورد نمیدانستم از دست من دلخوره است یا مسئله دیگر را به خود مشغول کرده است شب وقت خواب به نتایج اولین روز مخفی شدنم فکر کردم کارنامه نخستین روز چریکیام درخشان نبود هیچ کار مفیدی انجام نداده بودم قضا درست کردن و مطالعه که نشد کار احساس می کردم دختر خورده برجوه و بی دست و پایی هستم که هیچ کاری از او بر نمی آید. باید فردا با پوران حرف بزنم این تصمیم به من نیرو داد تا شب را بهتر بخوابم. به ویژه که شب قبل هم خوب نخوابیده بودم. روز بعد بهتر شروع شد. حداقل میدانستم از صبح چه در انتظارم است. پوران مانند روز قبل در خود بود و توجهی به من نداشت. تمام نیرویم را جمع کردم تا بتوانم مستدل با او حرف بزنم. رفیق، چرا با من حرف نمیزنی؟ خونسر جواب داد مشغول کارای خودم هستم تو هم باید برای خودت برنامه بریزی من که تازه مخفی شدم فکر کردم تو آموزشم میدی پوران مکسی کرد برای نیست من تو رو آموزش بدم اینجا امکانات نداری مگه نمیبینی اینجا خونه تکی منه اینجا نمیشه اسلحه رو بازو بسته کرد و نشون داد و تمرین تیراندازی کرد برای آموزش باید بری خونه تیمی از ذهنم گذشت حق داره اما نمیخواستم کوتاه بیایم درست اما مگه آموزش فقط یادگیری کار با اصله است میتونی واسم از سازمان و زندگی درون تیم بگی تا دیروز لحظه‌ای وقت آزاد نداشتم نمیشی که حالا از صبح تا شب بیکار بمونم پوران در جمرم نقطه غلط یافت و همان را گرفت پیش میاد که گاهی هم بیکار بشی اینم باید یاد بگیری نمیخواستم و نمیتوانستم باور کنم که آدم کاملا بیکار بماند. پوران صدایش را بالا برده بود و من هم که هنوز از قدرت مسئول در زندگی چریکی خبر نداشتم از حرفم کوتاه نمی آمدم. خب به هم یاد بده چطوری خودمو توی این خونه جا بندازم اینو که میتونی یادم بدی؟ پوران که دید راه فرار او را بستم گفت نمیدونم تو این خونه چقدر بمونی. میتونی امتحان کنی؟ ببین میتونی جای خواهر چارده سالم خودتو جا بزنی؟ چهارده ساله؟ واقعاً که این پوران هم عجوبه ای بود. میتوانه صدقل بگوید شانزده ساله. سنگی جلوی پایم انداخت و مطمئن بود که از پس برداشتن آن بر نمی آیم. مثل خودم سرتق بود. این را گفت و مطمئن از اینکه روی مرا کم کرده سرش را برگرداند و مشغول مطالعه شد. از یادآوری این خاطره حسی خوش بر دلم نشست چطور باور کنم که پوران دیگر نیست هنوز چهرش پیش نظرم است مرا به کشتی و زورآزمایی آزمایی انگار میخواست بداند چند مرد حریفم رفیق علی از راه رسیده بود و نیما به او خبر درگیری رفقا را داد رفیق روزنامه را گرفت به گوشه اتاق رفت و آرام به خواندن مشغول شد. نمیدانم که او همان‌ها را می‌شناخت یا نه. لازم نبود رفیقی را بشناسیم تا از درگیری و مرگش ناراحت شوی. هر ضربه‌ای به سازمان ما را شفته می‌کرد. علی نگاهی به من انداخت مثل اینکه از چهرم پی برد که رفقا را شناسم اما چیزی نپرسید. کتابی برداشت و خود را مشغول کرد. شاید هم فهمید که من نیاز دارم تا با خودم و با یاد رفقا تنها باشم کتابی برداشتم و به حیات رفتم اما زور آزمایی آن روز با پوران از سرم بیرون نمیرفت به جای ناراحت شدن خود را در مقابل آزمایشی یافتم که پیش پایم گذاشته بود پوران حریف میطلوید آماده بودم تا به اون نشان دهم که زود از تکوتا نمی افتم. وقتش بود که از تمام تجربیات بازیگریم در تئاتر بهره گیرم. در تاعتر یاد گرفته بودم که 80 درصد آنچه سن و سال را نشان می دهد حرکات و حرف زدن است و 20 درصد هیکل و قیافه. جوانترها سبکتر و راحتتر و سریتر حرکت می کنند. مسنترها با آرامش و تعمل و کندی. باید به حرکات دختر چارده ساله باز میگشتم. موهایم را با روبانی بافتم و دو طرف صورتم انداختم. هیکل باریکم به دختری چارده ساله درشتندام میخورد. دختر صاحبخانه که فکر کنم همین حدودها سن داشت از من هم درشتر مینمود. بود. ظرف‌های نهار را نگه داشتم تا همزمان با دختر صاحبخانه کنار حوض بشویم. همونطور که مشغول شستن ظرف بودم سر صحبت را با او باز کردم. مدرسه تعطیل شده؟ هنوز نه، تو کجا مدرسه میری؟ ورامین، ما تعطیل شدیم. خواهرم من آورده اینجا چند روزی پیشش بمونم. کلاس چندومی؟ دومی؟ وقتش بود تا کارتم را رو کنم. اگر نمی گرفت باید فکر دیگری می کردم. نباید به او فرصت میدادم تا در حرفم شک کند. به قابلمه سیاهی در میان ظرف او اشاره کردم و گفتم بده بشورم و ادامه دادم منم هشتم اسرا چی کار میکنی حوصلت سر نمیره دختر صاحبخانه خانه لحظه ای هم در حرفی که زده بودم تعمل نکرد قابلمه را جلوی من گذاشت و گفت خیاتی مادرم یادم میده چی میدوزی؟ سر حرف باز شده بود ظرف ها را شسته بودیم اما حرف من تمام نمیشد بعد رفت لباسی را که میدوخت آورد و نشانم داد گفتم بده تا پایینش را تو بگذارم خوشحال شد از مدرسه و از دوستانش حرف زد سعی میکردم سالهای کلاس هشتم را با همه خاستها و آرزوهای آن روزگار به یاد آورم تا با او همصداتر شوم. یک واره سوال کرد بعد از نهم میخوای چی کار کنی؟ معلومه دهو شروع میکنم مادرم گفته باید دیپلم بگیرم با پیدا شدن زن صاحبخانه دختر حرفش را نیمه تمام گذاشت. مادرش که به حیات آمده بود و گوشش به ما بود گفت دختر دیپلم میخواد چیکار؟ بعد از نه باید شوهر کنه. فکر کنم پوران هم از پشت حسیر کارها و حرکات مرا دنبال میکرد. به هوای دست شدن به حیات آمد و سر صحبت را با زن صاحبخانه باز کرد. در نگاهش رضایت میدیدم. کارم درآمده بود بعد از ظهرها با دختر صاحبخانه تنابازی تناب بازی می کردیم بعد هم از او یاد گرفتم چگونه چادر بدوزم فکر نمی کردم دختن چادر انقدر راحت باشد گاهی صدایم می کرد تا با هم برای خرید نانو ماست برویم یک روز سر کوچه پسری را نشانم داد و با لبخندی گفت این پسر اسمش محمد رزاست هر روز از دم مدرسه تا خونه دنبالم میاد مکسی کرد و ادامه داد داداشم نفهمه که بیچارم میکنه. برادرش را یک بار در همان روزها دیده بودم که با لباس سربازی از حیات رد شده بود. خوبه که رفته سربازی و فقط آخر هفته ها میاد و گنه این تابستستانو بهم حروم می مادرش چند روز بعد حرف توی حرف آورده و از پوران پرسیده بود خواهر شما باید حتما دیپلوم بگیره مثلا اگه یه شوهر خوب پیدا پیداشه، نمیخواین شوهرش بدیم؟ پوران به متلک میگفت مثل اینکه گلوی پسره پیش تو گیر کرده با شیطنت گفتم ببین اگه من الان زن این پسره بشم دیگه نیازی به این همه توجیه خونه نداریم دوتایی زدیم زیر خنده هنوز بعد از گذشت یک سال شیطنت چشمانش وقتی این حرف را میزد جلوی نظرم است این درست نقطه مشترک ما بود برای ما مسائل همانقدر میتوانست جدی و در عین ها شوخی باشد در هر جایی باید شیطنت خودمان را هم می وقتی مخفی شدم فکر می کردم در زندگی چریکی همه چیز جدی است اما پوران به من فهماند که زندگی مخفی هم زندگی است و شیطنت هم جزی از آن و نمی توان تعطیلش کرد از آن پس پوران زمان بیشتری را با من می گذران. با هم برای یافتن و اجاره خانه تیمی می رفتیم و من مشخصات خانه مناسب برای تیم چریکی را یاد می گرفتم. او در خانه ها را می زد و با سمیمیت و مهربانی از اهالی محل سراغ اتاق خالی را می گرفت. پس از هر جواب مثبتی داستانی مناسب با وضعیت خانه و صاحب خانه سرهم می کرد می گفت اگر داستان را با اعتقاد و محکم نقل کنی باور می کنه. اما اگر مردد باشی تردید تو به مخاطب منتقل میشه او هم اون رو حس میکنه روزی هم کمربند خود را باز کرد و نشانم داد کنجکاو بودم بدانم چریکها چگونه آن همه تجهیزات را در زیر پیراهن خود مخفی میکنند در کمربند هر چریکی سلاح کمری خشاب فشنگ اضافی یک یا دو نارنجک کیف کمری محتوی پول، شناسنامه، گواهی نامه و آمپول اضافی سیانور جاسازی می شد. پوران کمربند را زیر لباس های خود می بست. زمان درگیری به سرعت لباس را که با دگمه های قابلمه از جلو بسته شده بود باز کرده و اسلحه را می صلاح پوران، یونیک فرانسوی کالیبر 25 بود سلاحی کوچک و سبک رابطه با پوران چنان گرم و خوب شده بود که انگار سال هاست همدیگر را می او درباره من با رفیق قاسم صحبت کرده بود وقتی رفیق به دیدار ما به خانه تکیه پوران آمد گفت پوران چی میگه؟ گه؟ خود تو جای دختر 14 سال جازدی؟ واسه خاستگار پیدا شده؟ از این تعریف بهتر نمیشد. رفیق چشمهایش را ریس کرد و بعد از مکسی ادامه داد چطوره که بری و خونهی با یک از رفقای پسر بگیری؟ فکر میکنی بتونی؟ باورم نمیشد که به این سرعت مسئولیت توجیه ایک خانه تیمی را بگیرم عالی میشه رفیق کی؟ حاضری با رفیق رزابری دنبال خونه؟ با هر کسی که لازم باشه رفیق؟ رفیق قاسم مکسی کرد و گفت منتظر باش میام میبرمت آنقدر خوشحال شده بودم که میخواستم به گردنش آویزان شده ببوسمش میدانستم که دوران آموزشی عضو تازه است و مدتی طول میکشد تا به او مسئولیتی بدهند کسی که این مسئولیت را بر عهده میگرفت باید چنان رفتار میکرد که همسایه ها و اهالی محل او و هم تیمی هایش را به عنوان یک خانواده میپذیرفتند و وضعیت قیرادی خانه تیمی از چشم ها مخفی می ماند چند روز بعد رفیق قاسم مرا از پیش پوران برد آن زمان که از پوران جدا می شدم فقط به آینده و مسئولیت های پیش رو فکر می کردم به خطر به مرکت تا به پوران هم فکر نمی کردم. آن شب بعد از برنامه نویسی رفیق علی خواست تا نیما به یاد رفقای کشته شده شعری بخواند نیما نگاهی به من انداخت و لحظه ای مکس کرد. شاید به دنبال شعری مناسب میگشت تا وصف حال آن شب من باشد و گفت زنده هایی هستند که از مرده ها مرده ترند و مرده هایی که از زنده ها زنده تر. آدم باید طوری زندگی کنه که هرگز نمیره. و با بان همه سلاح بان همه با بان همه گلوله که بر پیکر توریخت ارنستو این بار هم دروغ در آمد تو نیما بهتر از این نمیتوانست با من هم حسی کند نکته همان بود پوران در من زنده است و زنده خواهد ماند به خود جرأت دادم و برای اولین بار در تیم ترانه را که پوران شعران را گفته بود و بارها با سوز دل خوانده بود یادش بخانه در دل سهرا میدمد لاله لاله های سور قرق در ای فدایی در راه خلق سینه خود را سپر کن بوز راه گلویم را بست و نگذاشتان را تا به انتها وقتی همه خوابیدند و نوبت نگهبانی من رسید توانستم دوباره با پوران تنها شوم. چطور باور کنم که دیگر نیست. ما هر دو از ضربات پنجاه و پنج جان سالم به در برده بودیم. ضرباتی که جان بسیاری دیگر از رفقا را گرفته بود. بعد از ضربات رابطه من با سازمان قطع شد. پنج ماه به دنبال سازمان گشته بودم. و هر دری زدم سازمان را نیافتم فکر می کردم همه کشته شدهاند. پیدا کردن دوباره رفقا و دیدن دوباره پوران خوشبختی بزرگی برایم بود او را دوباره آبان پنجاه و پنج دیدم این بار در شرایطی متفاوت و روحیه دیگر سازمان ضربه خورده و رفقای بسیاری کشته شده بودند حمید اشرف، رفیق قاسم رفیق من رضا و بسیاری دیگر از رفقایی که نمیشناختم جان باخته بودند ارتباط اغلب رفقایی که زنده مانده بودند با سازمان قطع شده بود گروهی از رفقا هم مشی مسلحانه را رد کرده از سازمان جدا شده بودند من هم تابستانی بی ارتباط با سازمان را پشت سر داشتم پورام پرسید چرا از ساکت شدی؟ نمیخواستم جواب سوالی را که در اولین لحظه دیدارمان پرسید بدهم. اگر هم میخواستم نمیشد آنچرا که گذشته بود با کلمات توضیح دهم. دیگر منان دختر بلبل زبان و پرشر و شور قبل نبودم. پوران هم روحی ای دیگری داشت. لاغر و ضعیف شده بود. هستخانهای گونش بیرون زده بودند. از همه محسوس تر چشمانش بود. که دیگر برق سابق را نداشت موهایش را باز هم کوتاهتر کرده بود این بار به نظرم به خروسی میمان است که کاکلش را چیده باشد خوشحالیش از دیدنم بیش از انتظارم بود در اولین فرصت که تنها شدیم پرسیدم چی شد؟ چه بلایی سر سازمان اومده؟ دستم را گرفت و خواند: این نیز بگذرد همان شب اول ورودم به تیم بعد از برنامه نویسی پران پیشنهاد کرد که به خاطر وحث شدن دوباره من به سازمان و ورودم به تیم رفقا شعر بخواند. و خودش ترانه لری خواند هی سوزه سوزه سوزه یا نکم آخده تسوزه شومه ما نکم زیبا می بغز گلویم را فشرد معنی آنچه که كه خواند برایم مهم هم نبود که شاعرش گیست و ترانه آن را چه ساخته مهم بود که آن را برای من می برای زنده ماندنم برای اینکه دوباره در کنارشان هستم اشکهایم نه از غم بلکه از شادی حضور در کناران ها جاری بود از چنیدن صدای مهربان پوران و آن فضای سمیمی انگار همه ی آرزوهایم یک باره شداند شدند. تحمل این همه محبت را نداشتم. آماده بودم تا همان لحظه بمیرم. قرار شد در تیم پوران نقش خواهر کوچکش را داشته باشم. او با خنده گفته بود این دوه به تخفیف میدم. میتونی خواهر شونزده سالم باشی. خاطره آن خانه تکی با او را مدتها بود که فراموش کرده بودم. این بار پوران به من چون خواهر بزرگتر می رسید هفته چند بار موهایم را در آشپزخانه در تشت آبی میشست شانه میزد و می بافت. گاهی شعرهایی زیر زبان زمزمه می کرد و خاطره ای را به یاد می آورد و تعریف می کرد. صبحای جمعه با خواهرم می رفتیم زیر لحاف بابا. انقدر سر لحاف و این طرف اون طرف می کشیدیم که بابای بیچاره بلند میشد و می رفت. تفلکی از مادرش حرفی نمیزد. جز یک بار که گفت میدونی برای مادرم خیلی شعر میگفتم اما واسه این که بابام ناراحت نشه نشونش نمیدادم. وقتی بیشتر سوال کردم موضوع را عوض کرد. برای اجرای قرار صبح ها با مینی از ورامین به تهران میرفتیم. تفریح ما گوش دادن به آهنگ هایی بود که میگذاشتند. آهنگ ها و شعر هایی که ارزش هنری و ادبی معینی نداشت. اما به شکل ساده دردها و قصه های مردم جنوب شهر را بیان میکرد کرد. راننده های آن خط دو دختر جوان شیطانی را که سعی می کردند پشت صندلی راننده بنشینند و بگویند آهای راننده می تونید بزمتون و روشن کنید می شناختند و آخرین نوارهایشان را برای ما میگذاشتند هنگام کارهای خانه تیمی این ها را میخواندیم و میخندیدیم روز جدایم از پوران او مثل همیشه امیدوار و مطمئن بود اما من دیگر آنقدر تجربه داشتم تا بدانم هر جدایی میتواند ابدی باشد این احساس که همه رفتند و تو ای بر دلم سنگینی میکرد مرگ رفقا چنان سریع میرسید و حرکت بعدی چنان سریع آغاز می که فرصت خاک سپاری یاد آنها هم میسر نبود. شاید برای همین بود که فکر میکردم هنوز زندند و در جایی به کاری دیگر مشغول